حکایت مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم تایی در کرم ظاهر حالش به نعمت دنیا آراسته و خصت نفس جبلی در وی همچنان متمکن تا به جایی که نانی به جانی از دست ندادی و گربه بوحریره را به لغمه ای و سگ اصحاب کف را استخانی نینداختی. فلجمله خانه او را کس ندیدی در گشاده و سفره او را سر گشاده. درویش بجز بوگ تعامش نشنیدی، مرغ از پس نانخوردن او ریزه نچیدی، شنیدم که به دریای در راه مصر برگرفته بود و خیال فرعونی در سر. حتی اذا ادرکه القرق بادی مخالف کشتی ور آمد. با طبع ملولت چه کند هر که نسازد، شرطه همه وقتی نبود لایق کشتی. دست دعا برآورد. و فریاد بی فایده خواندن گرفت و ازارک بو فلفلکه دعو الله مخلصین لخدین دست تزرع چه سود بنده محتاج را وقت دعا بر خدا وقت کرم در بخل از در و سیم راحتی برسان خیشتن هم تمتعی برگیر. وانگه این خانه کست و خواهد موند، خشتی از سیم و خشتی از زر گیر آوردند که در مصر اغاره درویش داشت، به بقیت مال او توانگر شدند و جامعه های به مرگ او بدریدند و خز و دمیاتی بریدند. هم در آن هفته یکی را دیدم از ایشان، بر بادپایی روان و غلامی در پی دوان گر گرمرده باز گردیدی به میان قبیله و پیوند رد میراس سختتر بودی وارثان را ز مرگ خویشاوند به سابقه معرفتی که میان ما بود آستینش گرفتم و گفتم به خورینیک سیرت سر مرد کن نگون وقت گرد کرد نخوا